سبتحكم الله و خیر جمیعا انشاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی اللہ علیه سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعسومین و نعف دائمت حالا دائم اللهم افقن و جمعید مشغلین و رحمنا و رحمتی و از شد که بحث جدیدی رو که شروع شده راجع به بحث حجج و امارات و طبعا اصول عملیه بردشم دیروز توضیحاتی است شد که در کتب اصحاب ما یعنی کتب اصولی اصحاب متحصیل ما بحث حجج و امارات و اصول عملیه عنوان دو بحث اساسی در اصول قرار داده شده این در کتب اصول قدیم خود ما مراد ما از قدیم یعنی قبل ش خند مثل فر به این کتاب های معوم و کتاب مناهج کتاب های اصولی که قبل بودا فصول و حاشیه معالم ما تا کتابهایی که قبل مثلعلممون که که به طریح این در این کتب قدیم ما و کذاله در کتب اهل سنت کتاب اصولیشون این روش بحث این منهج بحث، به این صورت مطرح نروده که مثلا یه بحثی رو به نام حجج و امارات قرار دارد یه بحثی رو به نام اصول عملیه بله بحث تعادل و, تر... یا تعادل و ترجیح یا تعدل و تراجیح یا تعدل و تراجح یا تارز عدله یا تارز از خدم دیروز این بحث آخری رو انعوین مختلف بشتاده تمامیه که حالا شاید بهترینش اون تارز باشه این رو در کتب اصول اهل سنت فصل متعرض شدم توی کتب و اصول ما هم طبیعتاً خصوصاً بعد از مرحوم شیخ و بلاخره صلاح شیخ یه خیلی موثر نیست بلاخره است موثر هست اما بعد از مرحوم علامه مباحث تعارض به شدت بیشتری مطرح شد چون عرض کردیم بنا بر حجیت خبر اصولا تعارض تصویر میشه بنا بر عدم حجیت خبر اصلا تا عارض تصویر نمیشه چون خبر مادام متعارضه حجت نیست اون حجیت بعد از رفع تعارضه گاهی حجیت بعد از رفع تعارضه گاهی قبل از رفع تعارضه اگر حجیت تعبدی باشه یعنی یک معیار هایی برای حجیت خبر داشته باشیم این تعارضش معقوله مثلا میگیم هر خبری که راوی رسیده باشه این حجه هر خبری که راویش عادل باشه این حجه هر خبری که فرض کنیم در کتاب اربعه باشه حجت خب ممکن دو خبر در کتاب اربعه با هم متعارض باشیم اصلا تعارض به اصطلاح فرع قبول حجیت تعبدی است که ما تعبود رو قبول بکنیم اون وقت تعارض میاد اما روی مبانی قدما اصحاب ما به خصوص بهدادی ها چون این نحوه حجیت اصولا قائل نبودند دیگه خیر نه خیر مطرح نبود چون اونا میگن ما باید وصوب و اطمینان به این خبر یا به این حب پیدا کنیم چون این دو معناستی یکی وصوب و اطمینان به خبره یکی وصوب و اطمینان به حکمه سابقه اینا رو شهر دادن بیا حالا جای شهرش نیست خب باید حتی هرزناشو حجیت نمیاد اصلا حجت نیست یعنی غیر از او یعنی مادام اگر ما داشت، اصلا هیچ خودم از دو طرف حجت نیستن باید یکی سقوط فیدا بکنه ساوت بشه یا یک نحوی جمع بشه تا حجت بشه با فرض تعارض اصلا حجیت نمیاد که حالا ما فرض بکنیم دو تا حجت با هم متعارضه این توضیحات رو سابرا گفتیم یا باشه چون باید بگیم ولی زا ارز کردیم مثلا مرحوم سید مرتزا در کتاب ذریعه جرد دوم اگر حدود ملاحظه سطحه. اسه تآروز فر حجت ما هم حجت قبول نکنیم پس تآروز مطرح نیست این تآروزی که ما این همون فصل این کتاب نوشتیم یک جلد کتاب دو جلد کتاب مرحوم سید عمرزی رو به پنج شش سطر ختمش کرده دقت فرمودید این کلی بحث بود عرض کردیم این منهج بعد از شیخ انصاری جا افتاد البته کاری که شیخ در اول هم انجام داده این نبود دیروز توضیح دادیم این چهار تا رساله جداگانه بود بعد اینها رو پلو همدیگه زم و زمیمه کردن یک کمی هم حق و اصلاح تبییبی کردن مثلا مخصده اول دوم سوم وقش شد به صورت کتاب فرائد اصول یا همون اسم قبلیش که رسائل باشه عرض کردم کتاب فرائد روی که از شاگرده شیخ که ازای سید و شیخ دسپولی ایشون عنوان فرائد داده بله اصل کتاب ها رساله بوده دیروز توضیحات چه کردیم چهار رساله بوده یکی رسالت حجیت المزنه بوده که همین قطع و زننده، یکی رسالت براعت و الاشتغال بوده یکی رسالت استصحابیه بوده یکی هم تا آدر و ترجیح این چهار رساله رو با همدیگه زمینه کرده شد کتاب رساله و بعدها از زمان شیخ تا الهی هازا این منهج بحث قرار داده شد مخصوصا در کلمات بعد از شیخ فرصوی مثل کفایه و دیگران وقتی آمدن ابواب و اصول رو تحسیم کردن مثلا در کفایه که 8 مقصد برای اصول قرار داده مقصد ششم در هجج و امارات هفتم در اصول عملی است هشتم هم در تا آرزه اینا رو من توضیحاتش دیروز ارز کردم این مسئله اجتهاد تقلید رو هم ایشون در خاتمه قرار داده. ایده از اصولی ندارم بحث اجتهاد اصولی بعد تقلید رو نداره. هر این که علماکان و توضیحاتش گذاشت این صورت بحث این همین 150 سال و... به نظر من کتاب با در حدود کتاب رسائل سالهای 1250 ظاهر نشده. اون نسخه‌ای که من امروز ارث کردم 1263 نسخه اس که مرحوم آشتیانی استنصاف فردن کتاب شیخ رو هیچده سال قبل از وفات شیخ انصاری قدس الله عصب الان دیروز یه توضیحاتی راجع به تاریخ شیخ کتاب گذشت و دیگه تکرار نمیخواد دیگه فریده است یعنی بی در بابا خودش فریده به این معنا. الان حالا این راجع به این نحوه بحث البته عرض کردن در مباحث حجت هم یک بحث درباره در قطع قرار دادن یک بحث هم درباره زن قرار دادن که این بحث کلن در کتاب رسائل فعلا که موجود پیش ما اول اصلا اینجور نبود بعد حق و اصلاحش کردند. به این صورت شد که شیخ در اول اینجا فرموده البته شبیه این مطلب را هم تو اول بحث رسالات و برایت اشتغال داره شیخ هم اینجا دارن هم در اونجا و مثلا رساله استصحاب مستقل بود بعد نوشتن المکسد ثانی و الاستصحاب مثلا این بعد اضافه کردن چون می‌خواستن با رساله برائت و اشتغال جمعش بکنن این چهار رساله که جمع کردن اینطور شد که مقصد اول در غل شد دوم در زن شد مقصد ثالث در شک شد در شک هم در دو بحث اساسی شد یکی استصحاب بود یکی براعت و اشتغال و تخیر اون سه اصل دیگه رو جدا آوردن در مقابل استصحاب این اجمال بحث است اصل هم حضورتون که شیخ رضوان الله تعالی علیه اون عبارت مشهورش اعلام ان المکلف از التفت الى حکم شرعی فمانع یصل له القدر این تقسیم رو از حالات مکلف شوف آقایانی که بعدش شیخ اومدن و همین مقدار مقدمه‌ای که شیخ داره خود 700 800 بحث های متعددی رو انجام دادن بعضی هم خیلی رپتی به ما نهنافی حالا یا یعنی بالاخره مجموعه آحاشی شده که بعضی هاشو با بگیم یک فوائد اصولی است حالا ما برای اینکه چون در اینجا بزرگانی که هستن زحمات زیادی کشیدن صحبتهایی کردند ما هم تقریباً به همون قاعده‌ای که داشتیم از اینجا به بعد مده اساسی کارها کلمات شیخ در رسائل خواهد بود نحوه بحث ما بعد به عنوان یک تعلیق اساسی متعرض کلمات استاد محروم های خویی میشیم بعد از اون هم این مشایخ سلاسه رو خدا من بیشتر نظر میمشایخ محروم های ناینی و محروم آزیا و محروم های آشماموسیل اسفانی محقق اسفانی بلا دیگه حالا به همین اکتفاش میکنم چون اونم بلاخره توی آویلا یکی از همینو خواهد این سه آزیا آی خوی مصباحوس. البته الان مصباحوسو پیش من نبود از دراسات اردم. فهم نمی‌کنه درسا در دوره سوم ایشون مصباح دوره 50 یا چارون میشون میشه. مشابه هم خیلی فرقی نداره. الان امروز که من داشتن اس که ارصوزی ازم. ارصرم خدمتتون که این راجبه نحره بحث ما خب با آخرش هم تعقیب. در مجموعه مطالبی که در اینجا گفته شده در این مقدمه کلمات مطالب متفرقه ای هست. من سعی میکنم تقریباً تقریبا اون امهات این مطالب رو حالا در ضمن کلمات هر کدومشون چون مثلا فرض کنم مرموم ناینی آزی یک نکاتی رو متعرض دان آی خویی نکته دیگری متعرض دان هر کدومی که از این نکات رو متعرض شدن که ما یواشواش مطرح البته ما قبل از این که وارد بحث بشیم این توضیح خدمتتون رو نو ارز بکنم که مراد مرموم شیخ در اینجا ابتلاعا اون به اسطلاح نسبت یعنی بحث حجت راجع به احکام شرعیست نه راجع به موضوعات خارجی چه در باب زم نشته، در باب شکش، در باب قطعش مثلا من قطع پیدا کنم که مثلا زیر عادله این محل بحث ایشان نیست الان بحث قطع در موضوع خارجی محل کلام نیست اگر زحمت دقت بفرمایید عنوان ایشان اعلی ان المكلف تفت الى حكم شرعی مراد اون حجتی است که در احکام شرعی است و عرض شد که بحث حجت در احکام شرعی یه بحث دامنه داری است سابقا هم توضیح دادم چرا بعد از این هم توضیح خواهم داد فقط اجمالا عرض میکنم که بعد توضیحش بیاد یه مقداری از مباحث حجت مربوط میشه به به اصطلاح حالا گایی میشه میشه گفت حجت به اصلاح یا مسادر تشریح مثلا آیا اجماع حجت هست یا نه آیا مثلا فرصویین سنت پیغمبر حجت هست یا نه این حجت سبوتی از مسادر تشریح هست یا نه آیا خیاسورعی حجت هست یا نه این بحث حجت به این معنا از قرن اول از بعد از رسول الله مطرح شد چون این مواحث رو بدونین تاریخ این مواحث رو در دنیای اسلام کی وارد شد در زمان و بیشترین بخشش هم ابتدایش از زمان ابو بک شروع شد بحث ها لیکن امده بحثش از زمان عمر شروع شد زمان عبو هم فتح زمانیش کم بود هم ابتلاع مسلمان ها کم بود زمان عمر هم زمانش طولانی تر بود حدود ده سال بود و بعد هم شون فتوهات واقع شد با موضوعات جدید. با مسائل جدید مثلا من سابقا توضیح دادم تا اون وقت توی فتوهاتی که خود پیغمبر اکرم هم انجام داده بودن به استثناء خیبر تقریبا در این فتوهات و جنگهایی که شده بود زمین ارزش اقتصادی نداشت چون غالب این اشعار مثلا قبیله بنی مصطلق قبیله فلان اینا اشعار رحل بودن به قول عرب‌های بدوی بودن انسان بدوی بازنی تعلق نداره اون سوار شده چه جور چه هرجویایی باشه مدت میونه باز طبیعتا زمین برای اون نقش اقتصادی نداره به خلاف زمین در زمان ما که یک نقش اقتصادی اساسی داره اولین باری که زمین نقش اقتصادی در اسلام پیدا کرد در همون جلیان خیبره دیگه نه چون مکه که خب اولش شهر بود بعدا مکه حرم الله بود این معنا نبود که به اصطلاح بارمان ارزش تقسیم بشه بین صحابه و اینا تقسیم هم نشد جالب تقسیم اصلا تا ده معتقدن روایت هم داره فتاوام از اهل سنت دارن ما هم بعض روایت داريم خب عمل نشده اصلا کرایه کردن به اجاره کردن منزل در مکه جایز نیست وقت مجاني در اختیار خود جاش قرار بدن روایت هم داره ابن حزم فتاوا میده الا اینکه اتفاقا غرض همینه که برای اولین بار که اینها توانستن یک زمین بزرگ یک نه وحشتناک مثلا فصل در مدینه آبشون از چاه بود خیلی کم بود مثلا آبی نداشتن در تمام این حجاز که به لحاظ مساحت دو برابر ایرانه که الان میگن عربستان سعودی یک دانه نهر جاری نیست الان هم نیست اون زمان هم نبود الان هم نیست حجاز به لحاظ مساحت دو برابر ایرانه لكن یک دانه نهر هم نداره بعض آب در اونجا یک بزه خاصی بود آب یکی از عوامل اساسی به حساب اقتصاده شما میدونید در اقتصاد متعارف غربی یعنی اقتصاد سرمایه‌داری سه رکن اساسی در اقتصاد وجود داره یکی طبیعت یکی سرمایه یکی کار مارکس است اصرار داشتن که رکن اساسی همون کاره اون دو تا اساسی نیست این تقسیمی که به اصطلاح آدم سیت کرده دربار اقتصاد اساس سه چیزه طبیعت کار و سرمایه طبیعت هم اساسش در واقع آب و زمینه خورشی که همجا هست ایراد مشکل نداره در عز آب یکی از ارکان و زمین این دو تایی که از ارکان تشکیل دهنده اقتصاد حساب میشن دقیق میفرم خب در مدینه در مکه نه, نه نهر آبی بود نه. چاه می‌کند چاه‌ها کوچیک بود یعنی کوتاه بود شش متر و هفت متر و 8 متر چاه‌ها برن نبود با دستم با درو میکشیدن احتیاج تا به این تناب این چیزی نداشت بس اون و چیزش نداشت از کیف ماکان اما وقتی آمدن زمین عراق هم زمین بزرگ سرسرس تمام زمین به خاطر زیادی گیاه از دور سیاه دیده میشه ارضا سواد بش گفتن آو که خب الانم که با اینکه آمریکا امریکا رو کشف کردن و انصافا امریکا گذاشتن دو رودخانه بزرگ میسیفی و آمازون که هر کدام بیشه از سه هزار کیلومتر. خب مراکز بزرگ آبی دنیا حساب میشن مرزاره که هنوز اراغ برونه کشور پر آب حساب میشه دیگه دو تا رودخانه پر آب داره که از شمال اراغ تا جنوب اراغ بالای مساحتی مسافتی بالای 900 کیلومتر این هر دو خوه رودخانه در جریان داره. آب فراوان زمین فراوان وقتی این بحث مطرح شد در زمان عمر که آیا این زمین ها رو ما بیایم به جنگنده ها و نیروهایی که در جبهه هستن تقسیم بکنیم یا نه ببینیم اساسا چی مطلبی در زمان پیغمبر نبود از هم مگر خیبر حالا خیبرم نه نداشت اما خب آبش خوب بود از آبش بود و زمینش هم که زراعتی بود صدها قلعه های زراعتی بود و زمان ابوبکر هم که چنین مطرح نبود اینی که خیلی از مسائل خواهی نخواهی در این زمان به اسطلاح عمر محرح شد خیلی از مسادر یک مطالبی روی که ما الان مسادر تار تشریعی میگیم از اون زمان اجماع از اون زمان وارد شد بحث اجماع زمان عمره بحث قیاس و رعی زمان عمره یک بخش دیگر از حجت معنای طریق که ما الان میگیم امارات، طرق، ادله، دلیل. این بحث از قرن دوم یعنی از قرن اول مطرح شد اما رو خود دلیل به ما هو دلیل کار بکنن بیشتر از قرن دوم مطرح شد یک از مباحث حجت که زیر بنای و اصول فی ما بعد قرار گرفت از قرن اول از زمان صحابه مطرح شد این مقدارش از قرن دوم این احاطه باید انسان داشته باشه به این مباحثی که مطرح میشه و عرض کردن که مرحوم آی جلدی تقریبا در میانه اصولین معاصر متأخر ما متأخرال متأخرین یه مقداری هم به مصادر عامه نگاه کردن بحث ها رو در کتاب‌های اونام پیگیری کردن مثلا همینجا دارن که بحث حجت غتو مصادر عامه نیامده چون واضح بوده این رو ایشون در اینجا دارن منع ا ذکرن احساس به غت نداره بوابص حجت به این صورتی که ما داریم ندارن احساس به قطع نداره که ایشون فرمودن مثلا این نحوه بحث حجج و امارات و طرق و ادله این نحوی که ما یک مقصد قرار داریم مثلا خبر واحد رو دارم این با مثال میگم فرض مثلا این با مثال قول صحابی و حجت هست اما اینکه یک بحثی به عنوان حجج و امارات و اصلا مباحث حجیت یعنی چه؟ که ما ان رو بعد ارزمونیم این رو اصلا اینها به این صورت بحث ندارن حالا قطع باشه یا غیر قطع باشه اصلا کنم خدمتون که پس بنابر این دقیق بفهمید اساس بحث از اول درباره احکام بود خود همین قیاس برای اثبات و حکم شرعی بود. رأی، قیاس، اجماع اینا برای اثبات و حکم شرعی بود. این اصل بحث در این بود. مرحوم شیخ از این راه وارد بحث شدند که اما ما عن یح صلی الله الغت اوزن او الشک به اصطلاح یکی از این سه حالت. که ان تعالی این مباحث رو ما یک یکی کی توضیح شه عرض میکنیم که اصلا حقیقت این مباحث چی ایاس این تقسیم مباحث و اصول به لحاظ حالات مکلف درست اصلا یا درست نیست اینشالله توضیحاتش روشن خواهد یه مدار کلمات اصحاب رو متعرض میشیم تا بعد رسیم به توضیح ها دیگه هست پس نظر اینها در این بحث راجع به موضوعات نبوده نظر اینها راجع به حکم بوده خوب دقت میفهمون و این رو هم ما باید اینشالله بعد توضیح بدیم که آیا ما مثلا فرصم اصاط البراعتی که مرحوم شیخ میگه آیا این در داریم ما چیزی اصلا به نام اصالت برای یا که که توضیحاتشو بعد ارز خواهم کرد استصاب دیگر این تقسیم است که شیخ ابتداعا فرمونده یا قطع هست یا زن هست یا شک و در بحث شک هم دیروز عرض کردیم شیخ میفرماد یا طلاح هز و معهل حالت سابقه یا لا طلاح هز این طلاح هز و معهل سابقه چون من اون ناینیم یه توضیحی را جبین عبارت دارن. من در اونجا توضیح و عز می کنم که معلوم بشه که شاید به نظر ما اونطور نباشه که معلومه. یا یا پیدا ایشون کاری به مراجعه به دلیل نداره ایشون مراجعه به حفظ میگن خود شما خود مثلا برای وجوب نماز جمعه در زمان غیبت منباب مثال ام. یا قط دارین که واجبه یا قط دارین واجب نیست یا غند دارین حالا منشه یا اجماعه یا پسون یا شکه یا اصلا واضح نیستش کدوم دلیل یا قط یا شکه اگر دلیل, اگر دلیل ندیده باشیم که از موضوع خارج است تو بحث نمی‌کنی در شبهات در شبهات در عزیز من اصلا اینجا رو حکم نزد بدون فص بدون فص که اصلا جای بحث نیست در شبهات در مسائل حکمی که بدون فص ان چه چیزی چی گفت نه قطع بدون فص ارزش داره نه زنده خب همین دیگه ایچون مرادش اینه نه اینکه بدون مراجعه بدون مراجعه که از مهند ایک خارج. خالده خب راجعه به این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمده من اشارات اجمالیت رو هم و بعد وارد بحث تفصیلیش اینکه آلا بشن خب در زنگارتون هم هست بحثای راجعه به خود عبارت شیخ مطرحه که آیا مراد ایشان از مکلف من الان اجمالا میگم میخوام تضمین سازی بکنم بعد به بعدش آیا مراد از مکلف مکلف فعلی یا مکلف شنی؟ اگر مکلف فعلی باشه مکلف فعلی اصلا تو چه التفات هست بدون التفات که مکلف فعلی نیست پس از التفته قید توضیحی میشه قید اعتراضی نمیشه اگر مراد از مکلف مکلف شععی باشه خلاف ظاهر وصفه چون اوصاف الفاظ در فعلیت دارن. حتی در اوصافی که جنبه اشتقاقی ندارم جنب اوصاف حتی در غیر اوصاف مثلا اگه گفت بر من کاغذ بیار ظاهره کاغذ،, کاغذ داره پنبه بیار میگه پنبه رو بعد کاغذ میکنم خب خلاف ظاهره ظاهر لغز مکلف در فعلی بودن هم مکلفه ظاهر قیودم در اعتراضی بودن اگر مراد مکلف فعلی باشه غیر توضیحی میشه اگر مکلف شعنی باشه غیر اعتراضی میشه لکن خب هر دوش یعنی در هر کردن خلاف ظاهره بعدم بحثی دیگری پیش آمده که این بحث بیشتر پیشه بین مرگوم نانی و آزیا مرگوم نانی فرم مراد از مکلف در اینجا خصوص مشتههد چرا چون ما حرز کردن نظر به مقام حکمه نه مورد ناظره به موضوع خارجی نیست این مشتههد است که در حکمی که مراجعه میکنه یا قد پیدا میکنه یا زد همه مقلط که بردله مراجعه میکنه <تص> لذا این منشه یک بخص دیگری شده مرموم ناینی نا مصرر از که عدله لا تنبوزه یعنی به شر که در احکام هست اصول و قبائل و زمین معتبری که در احکام هست مثل صدق لیلا از احد من مقالینا فتشکیک فیما یعنی هم ناسقاتونا تمام اینها اختصاص به مشتهد داره مرموم آزیا می خواهد می خیر آم شما شامل و مقلد هم میشه لاتن و غزل یقینه بشه مقلد رو هم میگیره البته لاتن و غزل یقینه بشه در موضوعات خارجه قطعا مقلد رو میگیره مقلد نونتین دستش با الان شک میکنه استحاب جرایی ما این بحثی نیست بحث سر حکمه الان بحث ما سر حکم بعد مدید یا منظور از خورجه همون چیدی که اغربا احتجاج میکنه همه بعد عرض می کنم از نمازونی چاوی این هرس فرق نداره مشاهد باشی و مقدر باشی اصلا اینجا به یقین که احتجاج نمی کن. چرا تو ایسی دادگاهی نمی آقا این کار کردیم؟ چون من یقین داشتم چرا من یعنی یقین داشتم, من داشتم, داشتم. میشه قابل محضون نیست. چرا خب اینا شما تصور دیگری دارید که من از بحثای بنده متأثر شدم ما معتقدیم که یقین داشتن کافی نیست ولی اینا بناشون که یقین داشتن کافی یعنی کافی لاغت برای محضوریت حد در حالش نکته دیگری که در اینجا مطرح ادرهی مطرح کردن و اون اینکه اصولا چرا مرمون و شیخ قدس الله و سره یا کسایی که بعد از ایشون رو در بحث رو مکلف بردن جمله از احکامی که ما برای غیر مکلفین هم هست حتی جمله از عبادات برای غیر مکلف هم برای شرعی است مثل سالات و سوم و اینها و احکام وضعیه که دیگه تقلید در شکلی داره شرق نیست مخصوصاً کسایی که قائل هستن از ماسین هم وضعی قائل مثل زکات و خمس به مال سبیه هم تعلق میگیره حالا برای تکلیف نداشته باشه اما به مالش تعلق میگه این احکام وضعیه مقیده به مکلف نیستن اعلماندن مکلف مضافن به این که کرارا عرض کردن به مناسبت ما در احکام عبادات بعضی از عبادات که حتی به غیر ممیز هم میگیره آدبا اون که قائل هستن عبادات سبیه مرادشون سبیه ممیزه اصولا وقتی میگیم سبیه عباداتش مشروع هست یا نه مراد اون سبیه ممیزه اما سبیه غیر ممیز مثلا بچه‌ای 2 ماهه باشه مثلا خمارتش شکرم برای نماز اینو خب قائل نیستن ارث کردین مطلب درس حج حج از تنها عبادتی است که از سبیه غیر هم درسته به خاطر همون روایت معروف که ان امرأتن رفعت صبیئا الی رسول الله که گفته شده اینو ما در روات ما سبیه داریم تو بعضی از روایات عامه داره که یک سال کامل به فقال فقال که اون بچه قبل از سن تمیز هم خصوصیت حج برای او عباد. پس اعلم اندن مکله این اختصاص نداره جدا کردن مثلا رختخواب بچه ها در هفت سالگی یا ده سالگی یا ش سالگی اینها قبل از سنه ولوه. حالا دیگه حال ع ای پیدا میکنه که بنا مبنای شیعه ثنا ممکن است که حتی غیر بالغ امام معصوم هم بشه اصولا از از جواد امام نهم تا دوازدهم که چهار هستن، امام هستند، به استثنای امام هادی همشون دون سن بلوغن این چهار امامی که بعد از علی رضا خود حضرت جواد خود حضرت به استثنای عسکری معظمه خود حضرت هادی و خود حضرت مهدی این سه بزرگوار هر سه دون سن الا به استثنای امام عسکری که حدود 22 سالشون در وقت تصدی امام. به استثناء امام ازکری تمام اینها دونه سن بلوغ بودن. پس بنابراین اختصاص این اوحاظ به مکلف علم اندن مکلف این یک مقدار باز با شباهات و مشکلات دیگری برخورد میکنه. اون وقت از طرف دیگه یعنی بحث هایی که مطرح شده یکی هم همین بحثی که الان کشون اشاره فرمودن که نه به تربیریشون چون گفتن زن معتبر والحاقه به علم غیر معتارم به شکه پس یا انسان حجت داره یا نداره قبل از دلیل دو یعنی که که اعتبار نداره من دو, دو تا <intellect> <sketch> یا حجت هر سه نداره دیگه خود همین دیگه لذا امثال لزاست گفتن ایشون چرا سه حالت کرده ایشون تصمیه می‌فرمودن یا گفته حتی دو حالت هم نه یک حالت ها تو زیادش ازم یه مقدار بحث راجببی این قسمت که آیا بحث تسلیس بشه یا تصمیه بشه یه مقدارم بحث را به اصول عملیها غیر از اینکه یولله از محل حالت صابه چرا لحاظ رو شیخ در اینجا به کار برده ننگ کان له حالتون صابقه لحاظ حالت صابقه رو مطرح کرده. یه مقدارم راجب این قسمت بحث میشه اینشاال الله تعالا. یه مقدارم راجع به انحصار چون ظاهر شیخ این تقسیم و حسر عقلیه آیا همینطوره انحصار داره یا نه ادهی گفتن اون ستاش انحصارش عقلیست این استصحاب نه ادهی گفتن نه کلن به لحاظ مجرا انحصار داره به لحاظ جاری انحصار نداره این توضیحات انشالله یکی یکی خواهد داره بحث دیگری هم که اینجا مطرح شده ادده از احلام مطرح کردن من محضرت و استاد که اینکه که چرا ایشان مقصد اول را در علم قراردن علم به معنی اصولی حجت نیست این این هم اقبت پس ما الان ادده از ابحاث را در اینجا در خلال این مقدمه ای که مرمون شیخ فرمدن محرح میکنیم از کلمات بزرگان تو اونها یک بحث و غوری میکنیم بعدم اینشانلا نتیجگیری نهایی راجع به اون مطالب تا بعد قبل از رو در بحث بودیت قبل ارز شد که مرحوم شیخ چه فرمودن و تعلیغاتی که بر کلمات ایشان مرحوم استاد قدس الله نفسه آی خویی ایشون هم مطالبی رو شروع کردن در اینجا. البته من این چون کتاب مصفحال اصول پیشم نفونیم هم اگر من هست کتاب پیدا نکردم جلید دوشه پیدا نکردم شادم نداشته باشم باید برم بخارم بله نه اونجا که نبواد منزه ببرم از <تصفح> کنم که حضورتون که فعلا از کتاب این اولم کتاب دراسات چاپ شد از دراسات فی اصول عملیه حضرتون اصول عملیه و خجاج و به دراسات رو مرحوم های اسدی شاهرودی پدر های اس محمود هاشمی شاهرودی که شما عممه ما میشد برمه اصلییت من ایشون چون خیلی کوچیک بودیمبد که مشهد آمدی همه هم اووال ایشان فوت کردن زاررا سرطان گرفتن فوت کرد. خیلی از شاگرد های ممتاز مرحوم آی خوبیی بودن حدود 20 سال درس مرحوم استاد حاضر شدن معروف بود من تو فامیلم شیننم آی خوبیم نوشته. در این مدت 20 سال حتی یک روز درس رو ترک نکردن، یعنی سعی میکردن حتی گاهی سفر بودن سامه را بودن هرجود خودشون رو برای درس برونن. البته مثل که تازگی عادی چاپ کردن این یک جلدش چاپ شده به نام دراسات اما بقیهش من در نجف به قلم خود ایشان دیدم خیلی مقتید به نوشتن محب... مباحث استاد بود رضوان الله تعالی علی و قلم خوبی داره ایشان خیلی مختصر و مفید و جامع مثل خود مسبحه مثل محاضرات نیست که خیلی طولانی نوشته باشه و تا من حالا مسباح گیرم بیاد فعلا از این کتاب میخونم چون میدونم خیلی مباحثش فرق نمیکنه مقایسه نکردم اون چون میدونم فعلا از این کتاب دراسات مرحوم آیه شاه رودی میخونم ایشون این مباحثی رو که من الان مطرح کردم که مرحوم شیخ در تقسیم دارن به عنوان تمهید و مقدمه این مبحث قرار دادن چند تا نکته رو من دیگه همه عبارت نمیخونم مرحوم استاد دارم ما عادتا طبیعت اینطوری که اول مطالبشونی میخونیم از کردیم در این مواحث اصولی بعد از این اول شیخ بعد استاد چون نزدیکتر و جمع تر کردن بعد کلمات اون سه بزرگوها رو بعد هم تحقیق کردن گاهی هم من لطه مرحوم های میشیم کلمات ایشان. یک بحثی رو اول ایشون مطرح کردن تیکی تیکه بحث اول که اصلا بحث از قد داخل در مسائل علم هست یا نه این بحث رو هم حضرت استاد ادس الله نفسه از کفایه گرفتن چون کفایه اشکال کرده که جزو اصول نیست مباحث حجیت قدر به مباحث کلام اشبعه بحث کلامی مرحوم استاد در اینجا متعرض شدن لا یخفا که بحث از قدر داخل در مسائل علم نیست حالا نکتهش و دلیلش هم به نظر ایشان اینه ایشو میفهمون چون ما گفتیم میزان در مسئله اصولی طبق تصور ایشان اینه عرض کردیم این معیار در مسائل اصولی رو مرموم های ناینی هم دارن استادهای های استادال استاد و استاد ایشون دارن ایشون همون کلام مرموم ناینی رو تکرار می فرمن. خلاصش اینه هر مسئله‌ای که نتیجهش کبرا قرار بگیره در استنبات حکم کلی شرعی این مسئله اصولی، این خلاصه است که مرموم, تع... تع... تع... تع... تع... مرموم ناین دارن هر مسئله‌ای که نتیجه اون مسئله و حاصل اون مسئله کبرا قرار بگیره در قیاسی که بخواهیم از او استنتاج یک حکم شرعی نه احکام فلکی و اینها حکم شرعی فرعی نه اصولی مثل اصول فر یا مثلا اصول اقایه و کلی کلی که ایشون گفتن مرحوم البته مثلا آقای خوبی نوشتن انتکون کبرا کلی لونغم ملی ها سغراها انتجد حکم فرعی این عبارت مقموم های شاقوی در تقریب ناقصه چه؟ <متقل> <جا. متقل> نه این کیشون روشه انتجر حکمان فرعیت این ناقصه خوب دقت بکنید نتیجه مسئله این تعریف دقیقش در کلمات ناینی این ایشون ناقص هردن یا آدم استاد در, در درس ناقص گفتنی اینشون ناقص هردن اون تعریف دقیقش این حکم من هم چرا؟ چون حکم نجومی و فلکی و فیزیکی و شیمی داخت خارج بشه فرعی هم احکام اصولی مثل اصول فقه و اصول اقاعد خارج بشه کلیه هم این برای این که قاعده فقهی خارج بشه مرحوم ناینی قدس الله سره مرحوم ناش این بود که فرق بین قاعده فقهی با مسئله اصولی اینه نتیجه هر دو نتیجه هر دو چه قاعده چه مسئله اصولی کبرا واقع میشه. لکن در یکیش نتیجهش حکم فرعی شرعیه هر دو حکم فرعی شرعیه. یکی است که کلی این فرقی این دو اینجور میگذاشتن. مثلا من باب مثال لازره لازره جزء قواعد مسئله اصولی نیست نظریشون. چرا؟ چون طبق لازرار شما میگین حکمی که ضرریس برداشته میشه. مثلا امروز وزوگیاسان برام ضرریس. شما میگید اینطور میگید وضو گرفتن برای من ضرری این سورا هر جا هم که ضرر باشه شاره برش میداره این کوبرا پس نتیجه این وضو امروز به این وضو برمن واجبی نیست نتیجه شک حکم شرعی فرعی جزئی است اما میگید خبر سقه حجته اونجا سورا شیل میشه این خبر ضراره خبر ثقت و خبر ضراره در وجوب نماز جمعه مثلا میکنه پس نماز جمعه واجبه خوب دقت بکنید چون حکم شرعی فرعی کلی فرق بین قاعده اصولی مسئله اصولی و قاعده فقهی در این نکته است هر دو کبرا واقع میشن در حکم شرعی فرعی نه حکم غیر شرعی نه حکم غیر فرعی لکن یکی حکم شرعی فرعی جزئی مثل لازرر فرق لازرر پیش مرمو ناینی با حجیت خبر واحد اینه با حجیت اجماع اینه حتی بالاتر از این مثلا استصحاب استصحاب در شواهد موضوعیه به تعبیر مرحوم قاده قاعده فقیه استصحاب در شواهد حکمیه مسئله اصولی در اول استصحاب مرحوم نائینی این فرق رو میذاره چرا شما مثلا میگه این کتاب طاهر بود اینجا پاک بود قبل از یک ساعت الان شک میکنیم هر چی که سابقا یک حالت داشت به همون حالت باقی است پس اینجا پاکه اینجا پاکه این جزئیه اما مثلا این زن در حالتی که مثلا عادت ماهیانه داشت یه روم و بطیه ها الان دم رفته شک میکنیم سابقا حرمت وقتی داشت آیا هست یا نه حکم میکنیم به بقا حرمت وقت تبقیه استصحاب بقا حرمت وقت یک حکم کلی است به یک زن معین نداره پس استصحاب در شواهد حکمیه حکمی کلیه میشه مسئله اصولی همون استصحاب در شواهد موضوعیه میشه قاعده فقی ده. بلا موضوع چرا اون میشه قادر وضوع زرری به درده میشه مسئله اصول نه اون آه. چون،, چون لازرر میگن همیشه حکم شخصی نتیجه میده نه ببینید میگن حکم شخصی نتیجه میده پس بنابراین دقت بکنیم مردم استاد میزان انتقه نتیجه تا فی طریق استنباه این تا اینجاش درسته به انتکون اونه کبرا کلیه انتبهتر این بود انتکون ها کبرا فی قیاس استنتاج حکم شرعی الفرعی کلی این تعبیر ترش این بود نوشتن لونزم ملیه ها سغراه ها انتجد حکمن این کافی نیست حکمن شرعی ها فرعی ها کلی ها بخونی چون من گفتم مصبابی شد اول گفتن قط مسئله اصولی چرا قط مسئله اصولی نیست چون نتیجه نتیجه قیاس باید خوشه به خود قط که دیگه برای ما نتیجه نیستش دیگه نه من زابط ده آش از اول سوشو از سوشو از سوشو شما ایشون در معیار مسئله اصولی بخون کار به قط نداشت به قط برگاه اشان اونجا میزان و معیار در مسائل اصولی چی باید داشته باشید این چیزا مسئله اصولی است یا تو اونم خوب نمیذارم به وظیفه و به نتیجه می دونم چیه لالا باشه وای تکرار این که خون می منم شدیم که بچه دی که من میگم اینجا میزان اینجا نوشیدم میزان فی کن مسئله اصولیت هن انتق فی طریق استانباد به انتخاب کبرا کلیه لوئنلم ملیها ها انتقاد حکم فریه نداری که شونه عبارتی هستن تک خب نداریم اون غیرش نخونیم پس معلوم شد روشن شد ان شاء پس این یک اصطلاحی است در یعنی یک معیاری است که مرحوم استاد در باب مسائل اصولی دادن معیار در مسائل اصولی بنا بر طبق معیار نظر مبارک ایشان اینه این بل به می من بگه میزانی که الان در اینجا خوندم اینه عبارتی که خوندم میزان رو در اونجا دارن یا در مسئله اصولی؟ در ادامه دارن؟ در ادامه دارن؟ اینا هم اینه همینه؟ اینه همینه؟ اینم غلطه هر دوش مثل همینه علایانه دقیق‌ترش این طوره مراد مqdm استاد واضح بخمشور نشون بود ایشون مشخص ندید نیست داینوی بعد در آقای هم در هر دوشون به استادشون آقای دارن لكن به این تغییر بیشتر بحث من خیلی ملانوقطینی میخوام بکنم مراد ما واضح شد المساله الاصولیه ای المساله صدقی و نتيجتها كبرى في قياس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی این موجز مختصر نه انتجد حکم نه تکون و نتیجتها کبر، قیاس استنتاج الحکم شرعی الفرعی به حصاب فرعی الکلی ال اگر شرعی نشد که من باسته مثلا فیزیک و شیمی و این هاست اگر فرعی نشد اصول فقه و امدونم فرض اصول عقاید این هاست. اگر کلی نشد اون وقت میشه قاعده فقهیه این مراد مرموم ناینی از این تعبیر رویست که وقت بذاشت اون وقت اگر شما قطع پیدا کرده که نتیجه من قطع بحق میدونم قطع بحق که کبرا قرار نمیگیره این اشکال آقای پولی به بحق کبرا قرار نمیگیره این نکته اول در کلمات مرموم استاد راجر به حجت قطع البته خوب در بکنید ما یک مشکلی داریم اون مشکلش که هاون بگن این جز اصول نیست باید مثل مرموم شیف که آمدن صفحه بد نشه الامرال اول, اول که حجت نیست باید شما که قارلین بحث حجت قرد جزو اصول نیست بعد چی بگیم؟ بگیم مقدمتون در این مقدم بحث از حجت قرد بگیم بعد میریم اصل مطلب حجت زنه که اگر میخواد زن حجت بشه ما باید اول حجت رو روشن بکنیم حجت قط اصلش اصولی نیست تمهیله طبق این تصور حالا آقاین اشکال میکنه که حجت قط اصولی نیست باید میهن مقصد اول فرقه حجت قط اگر اصولی نیست چرا اول قرار شدیم دیگه معناه که برو مقصد اول قرار شدیم برا برا یک صفحه بعد الام السلام الله علیه و علیه این علیز ناقص چیز شد؟ مگه بعد از, از این مدتی، مطلبی نبودم و دقیقه زارن 6 ساعتی یادم رفت روشن. سلام. علیکم شما خوش آمدید. خوش آمدید. خوش